سلام بیدلت در همه راه مؤمع شدن حیفم میاد روزه رو زود جمع کنم بیادبی نکنم سلام در همه الله مؤمم شده جناب. جناب. جناب. تو کجا تو کجا نیزه کجا وای جبا ما شده ها ناله بیزنیم تو کجا نیزه <تصفح> کجا اصاده <او> ما <تصفح> یه روزه ای به ما گفت دیوونه شدیم از این روزه نمیدونم بعضیاتون شنیده باشید یا نه ابو مخنف اینو گفته <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> میگه امام <تصفح> به اسم خیمه دارال هر جنازه همه رو در اون خیمه میخواستن جمع کنن خوب دل بده میخواهم ناله بگیرم از اتا میگفت اومدن همه جنازه رو جم کردن تو خیمه گفتن امیر, امیر گفت سر بفتن هر بفتن یکی از این رو بیارید بهتون جایزو دو میدم. دو دو میدم همه خنجرانو کشیدن یکی, یکی گفت من بلدم, بلدم جنازا کتا بر. بریم سمت خیمه داراله یکی رفت سراغ سر علی یکی رف زراغ سر علی ازگر یکی رفت زراغ سر عبدالله و جمه هر <تصفيق> <حر> من یا <رزید. تصفيق> بابدالله دیدیه دبی کاری زدن مگه شما جای زل میخواد آره هر به اومدم سرار رو بردن با دزخالی موندی گفت نه هنوز یه سر مونده یا بقیت الله من خودم دیدم و زل خونده برد باشد خیمه این ایزا رو برداری بیاد بریم باشد خیمه خزای خزای خزای ولی خزای از خزای باز هم هر ملز زرگر متوجه شده از باورم نیست که بالای زمین میخندی، باورم نیست که بالای زمین میخندی. دل من سوخته در از دل لیلاش اما همه اینا رو گفتم برای این دو بیتش, ای بیتش. ای بیتش. ای بیتش. ای بیتش. ای سلام، ساروانی که نگین پدرت رو دارم خدا کنه نفهم من جوان ترای مجلس ساروانی که نگین پدرت رو دارم چند روزی در این قابله بیدا شده شنیدم مرمله ستا تیر سجو به آورده گربنه تیر خلاص میخوایی گریه کنی بسم الله تموم شد روزه من یکی از اون رو از اون دیران رو خرده چشای ابل وزگه سقای, سقای کربلا, کربلا علمدار داره حسینه, حسینه یکی دیگه, دیگه از اون تیرال و خرج سینه حزننج سال رباب چیه روباب پسرم, پسرم, پسرم, پسرم حجم تیری, حجم تیری, تیری که, علمدار که علمدار زمین گیرش شد حجم, حجم تیری چه آلابدار زمین گیر اج، خوب خوب خوب خوب، پدرم نیست که در هنگام جا شده، این استاد میاری بله؟ علیلای لای لای هل لا اله الا این به دلم افتاد سید بیعدبی کردم ببخش, منو... ببخش منو گفتش که بچه ها نمیدونم دو کیا بین شما رفتن کربلا کربلا دیده نمیدم دو تو مجلس شسای شالا قسمتت چه بری ببینی به دلم افتاد روزی امشبمونه این آب فراتو که نگاه میکنی آلوده هنوزم که داری میری گلالوده استاد ما گفتش میدونی برای چی این گلالوده این آب گفتم نه جما نمیدون گو وقتی کاروان ما سرها رو داشتن میگردن بیبی رو باب نگاه کرد گو آب, آب فراد یه قطره از تو به لبای خوشگلی از خرم بیرسید مگه چی میشه تو هم رو شرمنده کردی هم حسین شرمنده میگن هنوز که هنوز آب فراد از خجالتش گلالوده بزگن روباب هر بله بیدار میشم پنجه و نه روز مونده دیگه سحمت دوبار خنده بازار میشم بسم باشه بزگن روباب سر به زرقم گذاشتیم از لان خیال, خیال کن خیال علی اصغر از هر جان جذب ولم بگویم حسین هی بیت الزهره سلام الله عليها b t z